دا اللهم بحثی که بگو رسیدیم به مناسبت تعرض به کلام اخباری ها البته بحث بحثی که بحث مستقلی و که مربوط به مرحوم استاد استادشون محمد نایینی بحث رو به اونجا به توضیحی دادن فعلا اون بحث رو به عنوان خودش مستقلن مطرح میکنیم تا دارستیم باز به بحث اصلی که در اون وارف شده بود بحث به اینجا رسید که خود حک نمیشه موقع اطلاق داشته باشه نسبت به این مجهد نسبت به حک محمد نایینی نظرم وارف شون اینه اون می فرماینه نداره تقییده به علم پیدا بکنه چون همون تشکال دو چون با به با که تا علم رو بیار و اگر بگه علم پیدا کردی این حکم هست خب دور لازم میاده بر است. این راجعه به این قسمان و چون اطلاق هم نسبتش به ایشان تقابلش با تقیید تقابل عدم و ملکه اگر تغییر به علم ممکن نشد اطلاقش هم ممکن نیست این هم صحبات دیگه ای مرمون های درست هم هست این مسئله به ایشان نجمانه لیکن مرمون همه به نتیجه تغییر و نتیجه سو اطلاق هستن و اون اینکه ممکن است به دلیل دیگری نه به نتیجه سو تغییر بخوره که این اسمش ای رو مطمئن من میذارن اصطلاح هم و نتیجه سو تغییر یا به دقیق دوم بگن اصلاح داره بیشه اصلاح اصلاح الاطلاق اصطلاح ایشانی ای. وقتیشون توجیش میکنن دوتا تو حکمی که بین اصحاب ما هست البته عبارات اصحاب در این دو حکم و مقدار این احکامی مقدار مختلفه بعدی هم سه مورد قرار دادن اون سه مورد یکیش جهر و اخفاته کسی در نماز ظهر مثلا جهرم بخونه یا نماز صبح رو اخباطن بخونه یکی مورد قصر و در مورد قصر و اتمام مشکورشون اتمام در مورد قصره عکسش نیست نه حالا قصر رو در موزه اتمام مثلا کسی رفته یک جایی بخواد پونزه روز بمونه این حکم بلد نبوده نماز قصر این دونسته که اگه ده روز بیشتر بخواد بمونه باید نماز تمام باشه این حکمی نمیدونه جاهل بوده و نماز رو عرض خونده که خود مرگو استاد همینجا قبول کردن اتمام در جای عرض عکسش رو قبول نکرد یه رو اخباد نه. مورد سوم هم صوم در سفره چون اگر ماه رمضان سفر کرد و نمیدونست که در ماه رمضان در سفر نواز روزه بگیره و ازاله روزه بگیره. این سه مورد محل استشهاد مروم ناینی اینجاست چون در حال که این احکام بار میشه پس قاعدتا به قرآن مقابله باید بگیم زد اینها مقیده به علمه مثلا این که در نماز ظهر باید ما اخفاد باشیم در صورت علم چون اگه جاهل باشیم و جهب بکنیم درسته پس تناولین در صورت علم این مقید میشه اخفاد در نماز در صورت علم مثلا قصر در سفر مراید میشه به صورت این چرا؟ چون اگر اکمام کرد در موضع جر پس معناش اینه که در موضع این باید قصر باشه خلاصه یه مطلع مرهوم نایمی حدس الله نصر در این سه مورد البته ارس که اندر چون که در کلمات مثل مره مستاد و نایمی آمده جهر و اخباد کلون که محل الاخر درست کردیم و اکمام در باید قصر این مقدار در کلماتی ایشان آمده اما از کردن در چه هایی دیگه گاهبه اونی که هم ذکر شده مثل اکتار روزه گرفتن در حال سفر یا حال در حال مرز من فعلا نمید در حال مرز روزه چه بگیره یکی موقع کبیم به صحت سوم بر این راجع به کلمات خلاصه کلمات مضمون های مرزومه استاد جهل خوشمون روزه ها تردیم نظار جهل باید نه جهل موز این راجه به این قسمتی که مرمومه نایی میفن استاد اشکال کردن بر ایشان بیشون تقابل بین افلاقات حقید رو سلب و, و ایجاب میدونن و به قول خودشون اگر تن از اون قابلیت فلی جمله اینه علم فلی جمله نمیخواد علم, علم خصوص حکم علم که ممکنه باشه همین که فلی باشه کافی است جهر که به جمعه ممکنه باشه یعنی علم و انسان به حکم و به موضوع و به همه چی تعلق میگیره حالا به خصوص حکم اگر نشد مانعه اطلاح نیست چون علم که فی نفسه ممکنه این تصور ایشان مطلی ایشان که فی نفسه ها ممکنه چطور مخوان تصویر بکنم من خیلی برای واضح نیست خیلی مناغشه نمی که ایمانیشون مثال روقت خدای این به نظر له ظ بناظر ایشان اگر در جای علم مستحیل شد تبدیل به علم یا باید تبدیل به جه بشه که اونم مستحیل به تبدیلش مثل علم یا باید اصلاح باشه ایشون به خلاف ناینین یعنی استحاله تبدیل علم استحاله اطلاق نمیاد این اما اون بحث ایشان که به طور متعارف ایشان مطرح میکنن چون نسبت سلب و ایجاب میزنن. اطلاق عدم و خیلی اطلاق چیزی نمیخواد عدم و خیل. شما میگید تغییر به علم ممکن نیست خب پس اونشی اطلاق اون خیلی خلاصه ای این تقریبی که در کتاب خوندی نمیخواد اون تقریب مثلا ایشان که کمیلیت خالی از ابحام نیست مفرح باشه این دو کلمه خیلی مختصر تقیی به این به حکم ممکن اونست نه حکم به این ممکن نه نمیشه این حکم هست در جایی شما ازداشه هر جا تقیی ممکن نشد اطلاقه لذای ایشان منتقله که حکم اطلاق داره شامل علم و هر دو میشه به همون کتاب اول نایین گفت اصلاح نداره به نتیجه تا اطلاقی به کتاب اول ایشون اعتقادشون نیم رضای افتیاجیم این حربا این راهی که ایشون رفتن ندارن این اطلاقی که ایشون مدعیه یکی در مورد اون مثالها هم ایشان جوابشون اینه که این مفاد اون روایات و عدله این نیست که احکام مقیدن به علم یا به جهر خب درد که اینجا نقطه خلاب لبن بین استاد در مثلاده با مرحوم ناینی مرحوم ناینی میگه حکم مقیده حک تو اشکال نداره. حکم قصد مقید از به که که بداره. محروم اصلا در نه. حکم مقید نیست. چرا چون تو ردالله انه رجل جهر فیماین بقی فیل اخباست. یعنی معلوم میشه حکم شایستگی اخباست. اصلا حکم اخباست بوده. لیکن جهره. ایشون جهره. امام زمان لابرست. لابردالله لا شهره. پس این در حقیقت این تصرف تو مقام امتصاله نه تو مقام جعل بگرد بگو من رو این تصرف تو مقام جعلی درسن تو مقام جعل بکم مقیده به آلمه استادی و اگه تو مقام جعل بود چطور میگه جعل بیماییم بقیل و جعل بیماییم بقیل معلوم میشه که مسئله مسئله مقام امتصاله عملا این کاری کرد و لاشه هره ایشون اینجور یا مغمون هایی رو از این دو مورد میرون البته مطلبی که ایشون فرمودن مغمون استالاجه به این که هره دیمایی هم نقید درسته تو روایت همینه حالا با قبل درستانه باید تو روایت همینه اما نکته دیگه اینه که به مغمون استالاجه با درسته نماز مسافر که اینطور نیسته حالا چون در اینجا گرفتن تو نماز مسافر اینطوره امکان قرآت علیه آیت و تخصیر و فست رفل نماز مسافر. و این لم یکون قرآت علیه ولم یعلم ها تأویر ولم یعلم هاست و آیت و تخصیره آیت و تخصیر توی مقام تق... به نزول حکمه بیان حکمه لذا این تعبیر یمبقی فقط تو جهره اخفا تو سوم همی نداریم تو لیل امکان جاهل هم فراشه همه و سهر سوم متقبله این تعبیر رو اینجا داریم بعد اشکال مهمون هایی چی دیگریه من تعبیرم از در مستاد این تو جواب دادن. اشکال نایین اینه که اگر شما تصویل می کنید حکم نیست چطور اجزا واقعه میشه شه آن این اجزا تو جور اجزایه غایت و مافل ملتظر بشین عقوبت نیست اگر انسان جاهل بود اگر یعن بقیه اجهار و فیه یعن بقیه اخباط و فیه. یعنی حکمش اخباطه پس خود جهر امر نداره اگر امر نداره شطور اضافه باشه خانی با قوائلشون نمیسازه با بحثای اصولی نمیسازه این که لا علی از در و این با شما تصور امر بکنید بجون تصور امر شطور میشه ایشون هم تو مقام امتصاله به قرنه جهر فیماییم بقیل و فی خب سؤال جهل انسان که امر درست نمی کنه. جهل انسان نسیان امر رو بر می درست که نمی کنه که که درست کنه رو فران نسیان حالا مرحوم نایمی و بزرگانی که بعدی طرفتن از تو کردن اوفتن در این شیشه‌ای که در حدیث رفع هست در همش رفع واقعی است الا در مالا یعلمون رفع ظاهریه آن چون تقسیم اون هر لازم میاد در جزء مبانی معروف الان اصول متأخره چون ما حدیث رفع قبول ندون خیلی واضح این بحثه نمیشه حالا اینا که قبول کردن تصرف برداشتن دست بر اون دیینه که شبهه تخصیص بکنه غیر عملش درسته لاغ از واعلی باید امر تصویب بکنیم شما شروع امر تصویب میکنید شما فوقش میگین جهر هیمالایم در جهر هیمالایم لا اشیاء اشیاء نداره خیلی خب شلالم نمیکنه جهر هیمالایم در پیمایم بغل اختاص اما چه درست کردیم من اونایی هدفش این بود که با جهر درست بکنه متدولوژی نقطه شما تا امر درست نکردین چطور میگین لا شما درستش ظاهر این تعبیر جهره باید ما فکر لذا مرموم نایینی میگه ما باید اینجور جمع بکنیم بگیم این شخص در مقام جهر حکم شینه در حالت جهر حکم شینه تا بگیم عزیزه بذاره پس یک حکم اولیه هست یعنی بقیه اخباطفی یک حکم سانه نیست این هم جواب از فرز مرموم نایین این باید یه یک تحلیل کلی‌تر این مطلب در نظر ما بشه یعنی انصافا فهم این مطلب در این درجه ای که این آیین به این مقدار بیان کرده واقعا مشکله یعنی انصافا مرحوم ناینی میگه تغییر به این پیدا میشه چرا چون تمام تغیر به جرب گذاشته خب خیلی عجیبه این کلام ناینی هم عجیبه اگر حکم بیاسته اگر شما جاهل بودید یا ناسی بودید یا غافل بودید یا در خرج بودید یا در خوب حالات مختلف درست شد؟ شما حکمتون در این حالت اتمام تمام قصر نیست خوب تعمال بذاره این معناش تغییر حکم واقعیت هستن این معناش این نیست که حکم واقعی مقیده به علم تعجب از تو این توجیه آخه شما اینطور بگیر این داره میگه شما جاهل به حکم واقعی بودید حکم واقعی خسره اگر جاهل بودید برازون جعله تمام میکنید خب این طور میشه فوقت اما این اثبات نمیکنه که قرص ما قیل به علمه این رو که اثبات نمیکنه این نهایتش اثبات بکنه یک حکم ثانوی واقعی استلاحاً اینطور میگن چون ما یک حکم ثانوی ظاهری داریم مثل موارد امارات که خلاف واقع باشیم یک حکم ثانوی واقعی به مثل ترمم، ترمم ترمم واقعی حکم ظاهری که نیست. این یک حکم واقعی ثانوی که اگر انسان جاهل بود تمام، شعر تمام. این معنیش اینه خلاصش اینه که باید قبول بکنه، معنیش این خلاصش اینه که قبول بکنه. این راجع به این مباحثات اصولی که آیا در اینجا طرح و اما حتی در مطلب چی، حالا انسان واقعا در اینجا متعیل میشه. انصاف صادر مطلبی رو که مرحوم نائینی فرمودن که احکام مقیده به علم و جهل نیستن. اولسه بازه من چون چند بار گفتم چند بار عرض کردم خدمت و قاعده مفیدی این رو بازه هی تکرار میکنیم ما کردیم چون در کلمات اصحاب مختلف آمده، این اینکه الان در مثل کفایه از چهار مرتبه کرده، چهار بفه گرفته. ما کردیم حکم یکی بیشتر نیست اون مرحله جهل. ته تا مرحله از جعله که بشین مبادی جعل علمیه یکیش ملاقات بعد از ملاکات خوب و این خوب و بغض مولا چاره،, چاره بعدم اراده و کراحته اینه اراده و کراحت تشریعی که از دیگران بخواد بعدم خود جهره این شد چهات بعد مرحله ارسال رسول که ما اسمش روشیم فعلیت آقا قادمان بی این فعیلیت توضیحاتش توضیحاتشی داده میدیم می‌خوام تکرار بکنم. مرحله ارسال رسوله که فعلیت بعدم مرحله تنجزه که وصول علال عبده یعنی علم عبد و مکلح قوم بعدم مرحله امتصاله انجام دادن و ندادن این چهار مرحله مرحله شد یکی حکم شد یکی مبادی جعل شد یکی سه مرتبه و سه مرحله بعد از جمع شد قیلیت تندجز انتصال با این برگرسن چون این برگردی از این تعاویر نامده ما با این تقسیم بندی خودمون خیلی راحت کردیم تحلیل و حقوقی رو این علم و جهل که آرانم دید و تو کدون مرحله گرفتی توی راحت تو مرحله ملاقات قطعاً علم و جهل که جهد بحثش نیست فاسین هماناله برای شما مفیده بدانید بدانید فخر ملاخط ایشان فاسین استجره به نام üzere برای جامعه شرح میکنه شما بدانید یا ندانید این مشکل در ملاقات در حب و بغض مولا در ارازه و قرائت مولا انصافا که در اون تاثیر نداره بحث این است که مطابق حالا بحث استحال و مستحال رو مطابق ارتکازات و عقلا تو مقام جعل علم و جهل اصلا لحاظ نمیشه اصلا بحث علموی هم در اونجا مطرح نیست اصلا کار همین به استحاله اطلاعاته اصلا نظر نمیکنه در همین ارخی مثال ارخی خورتون شما مرحبون خیلی یا کسی برای شما نان بگیره. اصلا صحبت این مطرح نیست که حالا آنم باشی یا نباشی میگید مثلا فلانی برای نان بگیره. اصلا این چهالا حکم بکن که بکنی اصلا کاری نداریم و علم، بله ممکن است مثلا این کلانی بره نام بگیره خب اگر نتواند اگر آجز بود ملتفت نشد چب بره بگیره این ممکنه تغییر به حالات سانبی ممکنه اگر نتواند سکول نداشت مثلا نموانسا وقت نبود یه بود چب بگیره یا این مطلب او نرسید این ممکنه اما این معناش تغییره علم نیست تغییره حکم نیست حق اصولاً تو مقام جن هیچ نوع نظری به اصلا نه اطلاق هست نه نظری تو اطلاق اصلا نظری نه که آقا کنی اخلاق اطلاق, اطلاق, اطلاق مثلا نیست در مقام جن اونی که انجام میده مقرنه یا عنوان رو در نظر میگیره تحریک شخص رو می به به طرف اون عنوان حالا این تحریک چه آثار و لوازی رو بحث حقوقی حقوق که الان جاش می این حقیقت شرد حقیقت نه این چوش مطرحه نه جل چوش مطرحه اصلای هر کار چوش مطرحه خصوصا یک نقطه اساسی داره که اصلا مطرح نیست بس استحاله نیست چون یه مرتبه بعضی داره که تنجده اون مرتبه علمه دقیقی چون بعد از جل باید افلاح بکنه به اصطلاح ما ها بشه و به اصطلاح قرآن انذار اصطلاح قرآنی برای فیلمه از توش فیلیت بودشید ایدیهش میشه ارسال رسول میکنه، اصطلاح قرآنی انزال، لونزه کم دی و من مندلها این نتیجه؟ اون به اصطلاح ارسال، یا به تعبیر دیگر ای تنجز. این نتیجه این ارسال رسول. و لیونز و قوم آنهم اداره کرده و ایهم لعلهم یحذروا این مرحله تنهج است. لعلهم یحذروا این مرحله تنهج حالا ما یه استسلام می‌گیرد، خدا وارد ما به استلامه چون در مرحله‌ی تنهج بدون اینکه از اون حکم در ذهن مکمل صورتی باشه امکان نداره. ولی اذا اگر شدیدیم که تمام اصول دور این نقطه میده شما از اول اصول تا آخر اصول دنبال این نقطه هستنی. اون صورتی که از هرک در ذهن کلمه میده تمام بهم مثلا این صورت منشهش چه از ظاهر سیخ از ظاهر سیخ حجوم تمام دست اصول این که از شابهی نفتن اصول موضوعش حجته حجته مراد مایوج با سنتجان یعنی تمام اصول در یک کلمه خلاصه میشه شما میلید ولی زا کردیم دو مرحله داری یکی کبرا که خم رو هرانی یکی سغرا اصول فقط توی کبرا کار میکنه او سغرا کار نمیکنه این مایه خارجی خم هست کنه اصول کار نمی این رو به افت آوردن تو قواعد فیر. که شرفاشو سابقا دادن دیگه تکرار نمی خواد روشن شد کل اصولی هم. چون توی خوف مرکبه تنجد هم چون توی هفت مرتبه تنجد هست که مرتبه ایمونه تو مرتبه جعل معنا نداره ایمونه نگاه کنه اصلا تو مرتبه جل نازل این مقام نیست این عالم باشی یا نباشی اصلا بحث اطلاق و تخییر مطرح نیسته چرا؟ چون مرتبه بعدی ابلاغ بعد از ابلاغ هم تنجده دقیقه آنه مرتبه تنجد هست اینگه رضا اصلا معنا نداره که مرتبه ایم و جهر نگاه بکنه. بله ممکنه جرم مثل خوف، مثل حرش، مثل نسیان، مثل سهر رو در نظر بگیر. لطفا این خوب گرفت بکنه. این تغییر حکمه. نه خود حکمه. نه به علم خود حکم باشی. میگه اگر شما قصر نفهمید من جهر تمام میکنم. این خود حکمه. نه اینکه تغییر شد، تغییر نیست. نه اینکه تغییر شد شده، این که خود حکم باشه. اصلا حکم جدید، چهل جدید. نه اینکه اگر حکم خاص مغایر به عینه، حکم خاص تغییر نداره، شقيم نداری فقط میاد میگه شما در ضرورت بودی، نمیدونستید. پس خود دقت خب بفرمایید. ما اگر باشیم با ارتکازات و اوغله ارتکازات و اوغله چیزی نمیفهمم، به نظر ما چی تاسه تو مرتبه جن نمیاد دیگه مکلف علم به گفت من داره یا نه اصلا نگاه به این حالت نمی کنه چون علم به هر حال در احکام هست اما جایگاه خاص خودشو داره حتی حساب دیگه و نظام ما کردیم مرحل مرحله ملاقات خوب دقت میکنید مرحله ملاقات اینجوریه که امور واقعی لكن اجزاییه خاصگاه قانونی یعنی یه شما مشمول یک حوادث هندوانه رو نگاه میکنیم فی نفسه قواعد پروتکل فی نفسه این یه دفعه نه یه اینو نگاه بکنیم به لحاظ اینکه مناسب با چی حکمی به زاویه‌ای که می‌خوایم چه حل بکنیم. ما چیزی نمی‌گیم نه هرگز ما قاعده این ملاک نمی زمینه جایی از خصائص جاهله. مکلف نمیتونه درکش میکنه که بشاهم تن بعدا خواهم. حب و بغض از خصائص جاهله. اراز و کراحتم از خصایت جایله جلن از خصایت جایله ادلاقم ردیبه جایله تو مرتبه یکنه جز نصفش ردیبه جایله که مثلا در رسانهی قرار بوده در افتیار مکلب نصفشم مکلب باید فرص بکنه این فرص این کن فرص کنه نصفش که چاره باد رسانهیش بکنه در اختیارو قرار بوده نصف دیگه شم این که مکلف باید فرست کن مرحله ای هم بنا بر مشهور بین علماء که بحثا چند سوال برنده دست در اختیار مکلف قرار دازن این هفت مرحله رو ما روشن پس این مطلبی به که مرموم استاد فرمودن یا نائمی استاردن دو طرف با هم در نظر ما اصلا بحث عقیمیه یعنی بحث غیروازهیه یه به اختحاله نذاره اصلا تو مقام جعل، علم و جهر این که و... با خود ران برگردیم چند بار من خدا نیز گفت موضوع تریحی من چند بار احسان که اگر مرادشونه علم تریحی محس باشه علم تریحی من هیچی احساس نمیکنه. اینم وصولیه. آره. وصولیه، موصوفیه، سفتنا. رو از ادله بکنه خب. ببینید شما. این این شما اجازه بدین من هم معترضی که خودم گفتم. من لذا گفتم مثلا ا مبحث گونزارو نمیشه اما مثلا زنب نمی‌تونه قرار بده. چون یه حالتیه. خبر قرار بده. ولی باید خوب تری یک ما گفتیم تریقه سر رو نمیشه موضوع قرار جده داخل وجود و قهر و رام سر اولا اگر دانستی شو که سر باشه چی باشه زنده بشه؟ این سرعت جلو سلا پس به نه نه. تو جالب گیر. یعنی شما به این معنیه تو داره. یعنی مرحله به این که هیچ مقامچه محدود به جاری از اصلا این شینیر چه تأثیری داره؟ من عرض کردم چه دارم؟ علم تاریخی سر که مثلا اجملات اجازه نمیکنه ها، فقط واژه علم بکنم. اینا تصری می‌ذارن که مراد ما از علم در چه تاریخی هست؟ به هر <تصرف> در مطرح علم. عزیزانا، لا لا، آیه کوینیه همهشون تصری می‌ذارن که چه تاریخی من میشم که وقتی که این این که همه برا موضوعش بکنید من موضوع واقعی می‌مونم وحبیه چیزی ایجاد بکنه اما آیه اون <سؤال> <سؤال> فیل... و وقتی آیه کم اجازه بدین وقتی آیه تحریم بزنه کی تو تعجج می خوره از این شما چی فعی... بدی ک وقتی فعلیتو مخ şeyi شما الفاظ مشترک رو بکار کار اجازه بدین فعل اد کردن نوعی یه فعلی که حوا موجود تا از مثلا الان نماز ظهر به تعبیر نایبی میگه وقتی نماز ظهر میشه که ارقام گفته میشه شما کلمه فعیلیت به چی رعنا به کار میبرید اجاب لا لا اللہ. من میگم شما آخون ایچی دیگه معنی فعیلیت گرفت این که میگید فعیلیت را در چیه من دوستم فعیلیت ایچی شما این که مقام جهل رو کلمه فعیلیه کار تو مقام جهل این کار رو اول یا سالی مهم نیست اول حکم و مغیلت کنه با عالم. عالم علم طریقی سر آنها این وقتی واجبه دارد جهل رو بودی جا بگه وقتی موضوع که وقتی مثل خمر بگه خمر وقتی واجبه که خمر باشه خمر خمر دیگه وقتی تا بحثی بدونی که شد از جمزگاری و مثل که با همگی در لب اختلاف داریم که واضحه اجازه بدین‌ها اجازه رو این راجع به این پس یه درس اصلا خود این مسئله فی نست است به ما خیلی واضحه نیاز به این بحثی طولانی نداره این یه قسمت درس یه قسمت بحث اینه یه قسمت درس راجع به اون حکم این که حکمی حکم جی بو چون معلومه نه این میگه این دو ما این به واسه توضیح من ارز کردم که دونتون دیوید چون تون تفاقیلی با تو وقت فرقی هست اما آیه اما مسئله قصد و اطمام در سفر ارز کردم کلی کلیمی و شیخ هم حاست دار روایتی که اگر در وقت یعید مطلبن که عالم باشه که جاهل باشه اگر خارج وقت لایغزی یعنی اصلا رفتی به علم و نداره این با یه قائده دیگری چون قضا به عمر جدیده وقتی که تمام شد امرو میشه در نقصش نقصه چیزی دیگری رکی به جهل و عرب و روایت صحیحه صحیحه به اصطلاح هم ماده عثمان تصریح داره امکان به وقت بلیو عبر امکان خارج به وقت بلا جهر نه جاهله برو از سآل جاهله انا رجل سلا سفر این که از این به ذهن داره رسید. پس یک درس سر این است که اون هوک چیه؟ که اون هوک در معلش خود من هم عقیلا اینه یعنی خود من شخصا در فر عقیده اینه که اگر جاهل هم بود در سفر نماز تام اون ما داخل وقت یعید. البته ای. مشهور این نیست اما عقیده خود من همین هم اینه که فلک این لكن خارج وقت لا این پس اون مسئله اصلا خودش بخته اینا محبوبان هم گرستن چون این فتوا مشهوره و از کردن مقروم شیخ خصوصی یک روایت اینه یک روایت اینه که نه همین محلت که عالم و جاهل باشه. و ارز شد ما عنوان عالم و جاهل تو روایت نداریم اون روایتی که سهی از باقل آقایان اینه امکان قرعت علیه آیات و تخصیل و بست رفلت طلاشی عربی و ان یکون ظاهر روایت به صيغه و یکون اینجا دیگه بعد قصرت نداره و ان یکون تو هم باشه دیگه معنیش که لن یعلم ها این تعبیر لم اینجا داره اینو به قرینه این که لم در این اومده گفتن تقدز بشن یعنی جاهلا درام نماز دارین خب اینطور دیگه فستر. و ما از کردیم این چون خسرت در قرع و خسرت اینو معنای مجازی کنایی آقایان بکرینی فنم ها فهمیدن امکان قرع علیه آیه و تفسیر خسرت امکان آدم. روشن شو این حقیق رساب و تختیر معتقدی نه یعنی از اهل سنته قره از و یعنی مذهب فقیی نه علم و جهل شیعه نه اینکه شیعه باشه آل مجاهل باشه این قره از و نه. از مذهب فقییه یعنی اگر از اهل سنت از آیه مبارکه جواد سمزه لیت علایتونان دراشه از آیه مبارکه جواب سن نماسید همون کن درست نماسید و این لم یکن قرآت و لم ها اما این قرآت علیم شیعه این قرآت علی آیاتو تخصیر و پس رفیق رفیق از اهل سنت و این لم یکن قرآت اما اگر نمی اینجا نه احل سنت لم یعلم اینجا اگر عالم نبود درسته، ذهنش نشده. اما این قرعه علی یا قسمت له، اگر تفسیر شده و میدونسته، میدونسته مَرحبش این بوده، شیعه بوده، این عاده بکنه. شیعه نبود، جایل بوده، این عاده نرد. علایها حاله مضاف که این روایت مشکلات دیگر داره که جاش وقتش اینجا نیست، البته شیخ طوسی ایشان اینجور جمع کرده، هر دو روایت قبول کرده. کلی این فقط به وقت اول قبول کرده فرق بین وقت و خارج وقته. البته این جمع مال شیخ سوسی هم نیست قبل شیخ سوسی هم بوده در سفر رضاق اینطور جمع کرده از زمان شیخ سوسی هم تا حالا اصحاب هم همینجور جمع کرده پس یه بحث این هست که اون مطلب چیه حالا اون اصل اون مطلب یه بحثم راجع به جهر و افقاط رواست جهر و حالا مشکل سنوی هم داره مشکل متنی هم داره اون تفصیلات خودش یاره درسته جهر فیماییم بقیه الاخباط و فی آل امکان ناسیم و غافلن او لایگری فلا شعره. این لایگری جاهلن گرفتن درستن از لایگران جاهلن نا روایت درسته یا نه و چه نقطه فنی در اونجا هست اون نیاز به یک شرط دیگری داره که حالا بر این حالال توضیح شده همین چون ااصل که میگه بث خارج شد با این مطلب روشن بشه. راگیر به سرم در سخرت که اینشا توضیاتش به یک مناسبت دیگه خواهم گفت اون هم واضح خواهد شد که انصافش روايت دلالت داره و روايت هم داریم سرشان درستسته و که قبولش حسب سوار بسیار مشکله. لدان ما هم قبول است که انصافافت حس قووا قبول ن رووارد که اینشانه در خیال بحثای ما توضیحش داده بشه. این راجع این سه تا حکم اجمالن و اما نوعما تفصیل این مطلب یه مطلبی که محمد راجع بین مطلب توضیح ده این مطلبی که خیلی در فیخت سرایان داره مجبور رو که توضیح بدیم یه به اصطلاح صحبت اجمالی بکنیم و بعد یه ای توضیح این تفصیلی اینشالله به مناسبه در این برس نبقاییم برسن تفصیل, تفصیل ت ما اصولا عرض کردیم اون که از مجموعه روایات استفاده میشه این از که در شریعت مقدسه چیزهای هست احکامی هست به نام فرائز الله و اموری هست نام سنن النبی که همین اخیران میتوضیح راجعه سنن النبی بفته شد و وقت در سنن نبی از یک روایت سیعه زراره این معلوم میشه را تا آده من منخنز آخرشون که و ان و سنه و سونه و ولا تنقض از سنت و الفریزه این یه قاعده است این مراد این قاعده چیه خوب دقت بکنید ما اگر یک فریضه الهی داشته و یک سنن نبوی داشته در حالات عذر اخلال به سنت شد اون عمل درسته می شه مثلا خوب دقت وقت سنن، گاهی به عنوان سند رسول الله آمده گاهیم به عنوان در فعل این طور بودی اصطلاح فوقهایی از قرن دوم این طور بود سنند و تبدیل روی ینبقی فعلو این ینبقی که نایی از سنته یه بحثی که زیاد چنده باشین که یک در روایت گاهی من حرمته آینام گیر کردن که سر این سر بشینه در قرن دوم یه اصطلاحی شد بین فوق. این تو بین سوریان اهل سنت هست تصریر می کنند یهرم رو به ما حرم اقالالاتی کتابه میگفته اصطلاح بود بودند اگر حرام بود و به سنت یا نکتی دیگری دیگه شدند سابقا چند باز شردند فیلم وقت شرد این نیست اگر حرام بود و به سنت یکره می این نکتی در این روایت مگه اگر دقیق بکنید به انر رجل جهر فیما ینبر این خود ینبری اشاره به سنت بودنه اش سنت اینجوری که اگر انسان اخلال او عمدن بکنه لما عمل باطله در حالات و عضو لایزو توی این قاعده قابل استثنان هست اینکه قاعده کبرای قابل استثنان هست هست و رضا همین روان این که متحمدن خلاح صلاح و این فعر که صاحیم او غافلن ناسیم صاحیم اون لایذری فلاح این دقیقه بکنم این روشن شد این در حقیقت دنبال این نقطه جه عذره و رضا جهری باید باشه که عذر باشه جهر تقصیری هم عذر نیست نه، بذاری، دلیگ... نه مغایر، من در ارکان توحیدش بحث بکنم. با اجازه بدین خال، والا بنی مغایر عین نمی‌شن، نه اینکه توحید گردد. و امر به سنت اینجوریه. این جوریه. این دامو چون شد طبیعت سنن النبی، طبیعتش. این یک تفسیر جدیدی است از شریعت، به زنا و نه، به درخواست این خلاصه اینه که سنن اگر اختلال به اونها عن عذرین شود، مثل نسیان، مثل ج جهل کسوری نتقصیری. اینها مزار به عمل نیستن به تعبیر ما فین نصنّت، فین، فین، فئن، فین، فین، فین، فین، فین، فین، سنت فین، فین، فین، فین، وقت در فین، فین، اصل فین، خودش فین، فین، فین، لذا تو داره که شخص از تازه مسلمان شده قراعت بلد نیست امام کنال ایوم سنان یرکه اولی هست جد سن فریضه این همه سرکو و سجوده این سلاته سلاست و اثلاست سلسل توهور و سلسل رکو و سلسل سجود اینا به عنوان فراعز هم قراعت و ذکر رکو ذکر سجود و رکعتین اخیلتی ما نظریه سناره خود قرعه بود سمنه میگه بلد نیست شما ببینید قدرت نداره بلد نیست نمیشه تازه وارد احکام شده هم نمیتونه بخونه امام زمان سبحان الله و سبحان او ان یک کرایت شد همه شما اون کی میتونه بگه درک کرده الان یوه سنان یک کرایت شد یعنی فرائض اگر محفوظون در حالات عذر اختلال به سنت موذر نیست حالا این تصویرش هم ای آقا اشکال ده که یه و وایسور ما زمینه تو خاصی نه این یه تصویر دیگه داره که بعد توضیحش می ده. اول اجمالش که بگم. بعد قانون شرایط اون صورتی که مقتعمل شرایط هستن مشه نیست نه اجازه بدین اول من خودم متوجه شدم یه شده اما ظاهرش شدی، شده اما ظاهرش شدی. از کنم که خوب جذب تر حالا من از کلم اول، اول صحبت من تو ده ربع یک بیان اجتماعی عرض میکنم، بعد یک بیان تفسیری اجازه بدید اول بیان اجتماعی رو من عرض که ترجیح. تحس به این، این رواياتی که میگه این رواد علاقه ترجیحی که قبول بکن و درست سر نزد خود هوت هست ولگارد نزد خود هوت. چون جهر و اخباط منش سننه یمبقی یمبقی سنن ساهیان او ناسیان او لایان. این هم قضا. این اخلاله به سنن در حال اوز روی خب روشن شد نماز باطله در حال اوز نماز درسته پس این رفتی به علم و نداره این اینو جهر یا خودشه ترکیب خاصی در شریعت مقدسه اون مباحث علم و رو بباید حقوقی آم ما مخرق کرده این نه این درشایی است. وقتی میمونه قصر و اتمام قصر رو که اونجا یه ضرافت لطیفی داره ببینید یه بحث معروفی بوده بین اهل سنت و شیعه قدیمی هم هست خروج از نماز باید چه جوری باشه؟ از ابو حلیفه نرفشو شما هر فعل منافی انجام دهی و خروج از نماز میشه تا اگه تشعر خوندیم برای چیز راه بگیم نه چیز قضا خوردن یا مثلا صدور حدث میشه هر فعل منافی انجام دهی از نماز خارج میشه در روایات ما داره سونیان ادیف یادشونان که نه خروج از نماز فقط به نهر سلام دادن به هم دیگره مثلا مسلیان گره سلام علیکم ورود در نماز با ذکر خدا خروج از نماز با تحییت و با سلام و هم با خیلی دیگه این جده سنن نبیه همین مطلب این که خروج از نماز باز با تسلیم با باشه سلام داده خود این سنته و نزا اگر کسی فراموش کن یادش رفت کنیم و گفت بلند تو نه افتاد نه خیلی کاره برد نماز سلام نگفت میگه نماز درست شون خروج از نماز با فعل منافی شد، اخلال به صنعت شد، خوب دقت بکنید و تسلیم صنعت، خود تسلیم جزء سننه ممکن است در اون روایت بر ما قبولش بکنیم، اینطور بگیم. بگیم اینجا را دیکته کرد بوده خوب دقت بکنید. یعنی چه کرد بوده؟ یعنی سر درخت تسلیم داشته باشه. بگه عبادت علیکم و رحمت الله. این اگر تمام کرد چه کرده؟ یعنی تسلیم نغو بلند شد نماز ادامه داد این نماز ادامه دادن نماز تو واجب جور که نه اخلال به سنت کردی وارد فعل منافی شد اخلال به تسلیم کردی این در حقیقت این رکعت دوم باید بعد از تکبیر سلام میداد درست این چون جاهل بود اگه قبول بفهیم حکومت ما قاعده ها رو درست نوشتم چون جاوید بود اسلام سلام علیکم نماز دید. خب مشکلی که بلند شد. بلند شد برای چی؟ بلند شد حرکت سوم. این شطرک سوم جزء چون مسجد بهشو بوده. هر چی نه. حالا تو آها بکنه غلط نه. کسی که بکنه نه جاهل باشه که باطله که درست نه نه امکان جاهلا لو با فهمو این که جهل عذری خوب تا تا عمل در مطرح... خوب دقت بکنی اگر نمیبینید چی اختلال به چی کرده اخلاقش کجاستی؟ من با خدا رو بیم؟ پس گفت آخ مو رو آخوگو بیشتر به یه ریت ریت نه وگرنه بیشتر میکنه. اگر خوب دکتر بخوایی؟ دارم. من از در من نه نیت؟ هم طرفی از این که چار رو کردی ها درور کردی ها قصد occursدزامیت در اجاز میگرد نماز دور ها من خورستان دار نماز دور ها من قصد این به نماز دور که وردین چه اخلالی کرده به دست چه اخلالی کرده اما هم این شر... چه اخلالی کرد این با قد اخلال ایتاسی میگه اونی دست باقی رستانه نیست اونا آمده این بحث ها کننده اومده این, این, این چرا؟ او ها اینا تصورشون این شده که وظیفه واقعی شده یعنی گرفتن دلیل رو مشارکت بشه که ایشون و لذا آقایون گفتن در روند داره که نانسان وسایل نوعی فقط به جاهز ده خلاف قاعده گرفتن یعنی چون خلاف قاعده گرفتن یعنی تصور بفرمایید خب موضوع طلبیه خدایی حال اجازه بده ما اگر آمد راست این اشکالی شما درسته تورن همینطوره چرا چون نقطه اینه که اونجا واقعی گرفتن این اجمال مطلب بده فردا اون بیه مطلب این اجمال البته یک مقدار تعظیم آغر هست توضیحشو فردا quale vuole